راهکارهای کجد گرایی برای رسیدن و دوبار اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست این همه را در برنامه کت گرایی و افغانستان از رادیو آنلاین راهریش هم شنویننده باشد. و همراهانی گرامی در صفحات اشتماعی محسومی سالات و حقوق اخوانستان ایترو، سازمان اکتماعی تفرید به راژی آنلاین رای سلام درود و و برنامه تفتگیرهی و افغانستان در این برنامه با حضیر کاشناکان و انتباگان افغانستان اخوانستان تفتگیرهی را از ووایا و منظر مطبع و برسورت تشماندادی برنامه بررسی تئوری اقتصاد گرایی برای دجار از بنیادها به حل تالاشای ثانوی و فدمی در است که ایدراتونیسا است تا در برآیند آن دگفونسان سوبا میموراتا در سطح های اقتصاد گرایی تشرف یابد. اقتصاد گرایی چیست؟ همین سیستم و چیست؟ چیگونه چی گونه رابطه بین اقتصاد گرایی و اندستین پالما پنیس وجود دارد؟ و چیلین از این رابطه برای بسیدن دکتور مشتیموی و سوز فائدار در افتان بردار این اون طالع دا با پاسنات علمی درنامه بکنکاس نید. نهمان من در این بحث محترم دکتور حتی پلال رحیمی استال دانستگاه و معاوی علمی دانستگاه جامعی هست. این آبین دکتور رحیمی خوبصورم درنامه نید که تر در رحی راید سلام، پیش جناب احتراما، تشکر می‌کنم از شما و وصایعی انصارای که در راستایی ترویج دانش و ها و رسیدنی افغانستان به ثبات و توسعه داریم، برنامه‌ریزی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم و انشالله که به در جایگاهی این بوزام که پیرامونی کسب‌گرایی رو به خصوص کسب‌گرایی در افغانستان، سطح ما رو اوقات کردیم به واسه مفیدی به بحث گرفته شو، بکنیم که از دیری در این زمان و در افکانستان وجود داره ما و ما با شما با ویکرد کسر از گرهی این دوران های که در جایی وجود دارینا را حل بکنیم تشکرات جنار رایی نیست ممنون ماخت باشیم برنامه از مقاهم آغازی میکنیم به نظر سوچه را به نظر سوما که صدگرایی چیست و مخصومی که صدگرایی چیزونه بودید آموده است که شما و دوستایی که برنامه رو مشاهده می‌کنن رو می‌بینن می‌دونیم که روی گروهی طبیعتاً از خلقت انسان و در طبیعت صورت عموم وجود داره چون بحث تنوع و, و بحث تعدد طبیعتاً وجود داره و ما نمی‌تونیم روی مدعی بشیم که از ها وجود داره چون طبیعت تنوع رو می‌پذره یعنی که امروز این ما و شما با هم دیگر داریم صحبت می‌کنیم تنوه‌های متفاقه که وجود دارد. حالا می‌تونیم تنوه‌ها و تعدد از نگرش گرفته، تا رفتار گرفته، تا خوشش انمثال‌ها و حیاف‌ها و همثال‌ها هم. اینا همه تعدد و تنوه‌هایه که طبیعتی که خداون خطر کرده این تنوع تعدد وجود دارد. روی این اساس ما کسی گرایی و پذیرشی تنوه‌ها نمیتونیم به تاریخ کوتاهی در این زمان برگردنیم بلکه این تاریخ و ای خیلی طولانی دارد و ما با اعتقاد و تکسر و اعتقاد میتونیم خیلی از چالش ها و مشکلاتی که هست حل بکنیم. کنیم ما باید بتاییم که لاکن انسان ها دارای های متفاوت هستند هستن و اعتقال متفاوت هستند و این خلقت و که ما در تمام جهان میبینیم از تنوع و گنابویی متفاوت وجود دارد. پرواریزم یا کسرتگرایی تفکر اندیشه که ما بتونیم تعدد دیدگاه ها و اختلاف دیدگاه ها را بخزیریم یعنی در مقابل یدوان اندوهی ترار میگیرد تکسرگرایی یا, یا پرواریزم یعنی ما نباید یک دیدگاه واحد یک اندیشه واحد یا بالاخره یک روی کردی واحدی سیاسی را که در نظر بگیریم با او متفق باشیم و تمام دیدگاه های متفاض یا خلاف دیدگاه خود متفرات بکنیمگی متوجه هستیم که تصور گرایی یا که در حوزه شما کار بگیریم در فرهنگی را ت کولگرایی میداری کگرایی میتی در روی ما پیشینه ای را اگر بحث بکنیم می از زیر زمان هم که نگاه بکنیم در تکسرگوهی وجود داره و در صاحر اویان و نظام های سیاسی تکسرگوهی رو مانوایی کلی مفتومی وجود داشته باست. شکرد. منابراینی فرد. مفتومی دیگه که ما سما رتبادان لبا کسرگوهی در برس میگیریم، همزیستی مسالمت آمید است. در نظر شما در گذاره به همزیستی مسالمت آمید داشته باشیم. همزیستی مسالمت آمید چیست؟ چی مفهوم رو افادم میتونه در همزیی مص آم میز مفهون است که ما باید با این روی کرد بتونیم کنار همدیگر با اینکه که ممکن است ما دیگاهی طرف رو قابلبول نکنیم یا مورد تحلیددی ما نباشد اما برای اینکه ما از ظار لوگیری بکنیم برای اینکه ما از کشیدگه به جمع جلوگیری بکنیم میتونیم با چه ف پول کنار همدیگر زندگی بتونیم این مصالحات آمیزش بودن می تواند ما با یک کسی که کاملا خلاف دیدگاه ما خلاق اخلاق را باور ما اندیشه دارد، تاثیر دارد، باور دارد، قرار بگیریم و در یک و آرامشی زندگی بکنیم. همین پذیرشیدیدگاه ها و برای تغییر نکتای دیدگاه های دیگر آن، ها قرار گرفتن در کنار دیگر آن، ممکن است بگیم اندیشه است که مصالحات آمیزی می پیش بره. حالا برای اینکه ما اگر مدعی و این است که تفکر ما تفکر درست و راست هست و باید دیگرها هم مطابق همین بیدیوها تفکر پیش بدروند راهی و برخورد نیست، راهی و جن نیست راهی و این است که ما دیگرها را به رسمیت بشناسیم در کنار خطران بودیم با گفت و با گفت دو و مناظره اشاره بکنیم که راهی درست و منطقه درست این تفکر که ما داریم یا هر کسی دیگر داره. با این حالت ما میتونیم دیگرانم هم در کنار و سوزیم و در سلو سر ببریم همین که دو ایدئولوژی متفاوت، دو, دو تفکای متفاوت، دو قومی متفاوت، دو, دو زبان متفاوت بطنن همدیگر از درد بکنن، بطنن در کنار همدیگر قرار بگیرن و همدیگر رو بکنن این توی حالت حالتی زیستی مثال غطانیز رو که در اکثریت از ویویوهای روابط بین برای جلوگیری از جنگ و رسیدن بی اکسطنگی نسلی گسته روابط که فارجه کشور هر و احساس مثال مطمیز خشنابات می کنند. سکر را اینیس برای رسیدن به زندگی مثال مطمیز یا رسیدن به رویکرد که سمات عریف کردن رویکرد مثال مطمیز، هندویسکی مثال از کزا مطمئن یا اتفاقی را در نظر روشت از کوری قسمی که می پیشنرم از کزار ما باید ذاتاً تعداد رو بفرد داریم ما باید ذاتاً با اندیشه ی تفاوت دیدگاه ها و اختلاف دیدگاه ها باورمند بشیم اگر ما معطفیت در این باشیم که یک دیدگاه واحد یک تفاکر واحد وجود داره و واقعیت یک تفاکر هم همین است ما نمیتونیم با ویکردی مسلمت پیش پیشتاریم اما اگر ما به تعدادی تفاکرات و تعداد دیدگاه ها باورمند بشیم، و برای رسیدن با سل و سبات یک اطلاعی متفاوت رو پیش دست بگیریم میتونیم به اندیشه های مسلمت آمیز پیدا رو کنیم و, و حرف یک این است که برای رسیدن با سل و سبات و رسیدن به اکتاسعهی که بکنیم به کنار هم دیگر زندگی بکنیم به زیده شدید دوهای طرف عنوان یکی از معلقه هاست ما در بحثی کسرتگرایی و اندیشه های مسلمت آمیز هم یعط رو دارید. به ما و شما در افغانستان اگر بیشتر خواسته باشیم روی ئله تاکید بکنیم و بزنیم ما رو جامعه خود ما رو در نظر بگیریم از آنجای که شما نیز شاهد است که افغانستان دارای شتاباپ های متفاوت و متعد است که والی شطاب ها میتونه شفپ های پای می باشه شف مهبی شاپ های زلوی و هم وجود دارد اگر ما رفعه که سایر اقوام، سایر زبانها و سایر مذاهب در این سرزمین هست و وجود داره و در کنار همدیگر با یک گوی کردی درست پیش برین بیانگر اینه که ما با اندشه های مسلمت آمید و تسترگرایی باورغم هستیم و میتونیم با این بزار به سواف و توسعیی هم که در آینده افتانستان میتونه تأثیر مصرف بشه بشه دست بیده بشه مینام دکتور رابطه میانه تسترگرای ببینید به وقت کسی را از گرایی به مسالمت آمید با حدود شبیه همدیگر یا انتراده که همدیگر هم داره میتونی ما استفاده بکنیم به منظور اینکه که هم به آ... معنی پذیرش اندیشه های متفاوت یا به معمی پذیرش اقواد و تفاوت متفاوت است اما مسالمت آمید یا زیستی که مسالمت آمید وقت بیشتر به معنی اینه که ما در کنار دیگر افراد بتوانیم به صورتی نصوی در یک وضعیت به سر داریم و خلاف باورهای کنها دارن در حضات و جنگ قرار نگیریم و من خوزهی که به مراتب وسیتر و تر از ویدسیف سلامت آمید است و بخشیف سلامت آمید به معنای حضیر شیزی است در کنار افراد دیگر ویدسیف است از این از از حستصاگرایی برای ناد ساختن فرهنگ زندگی به سال در افغانستان چیررو نه به من مییم خب ما متاسفانه در افانستان پیش برش کرد و ما با شفا های متعد ورو هستیم در افغانستان حال از سوی گرفته تااق رومی و تا سنتی حاکم در افغانستان و فرهنگی که در دارف گشته در افانستان وجود داشته ما در افرانستان زبانی می‌توانیم به روی کردی که سرگلوی دست پیدا بپنیم و تجیرش دیگرها برای ما اهمیت داشته باشه که همین این طفل پر در وقتی دینی ما شما را داریم که باید تعداد در دو تجیریم، بزرگاه متفاوت را تجیریم و ما بر اساسی باورهای دینی هم برای اینکه بتونیم دیگرها را بکنیم، ترغیب بکنیم تا اینکه سنتی دینی بر. او و من دیگه رو فدرالین که اپال دیگر رو در اختیار داشتن، بهقرار داشتند، پابنگو بکنیم و اساس همین، تو گلیجی ما با دیگرها وارد گفتگو و مذاکره بشیم. وقتی وارد گفتگو و مذاکره میشیم، باعث میشوره که انما الهواتو جایگاهی که دین داره، اونا هم بیشتر روانشن. شما اگر قطعاً به ذهن هستین که در دهه 1990، زمان کتابی که مار شوروی، گروه پاشاخان سینتز، تمت پرخوردی ادیان رو تمت اونها رو مطرح میکنه که اینا با همزگر در سزار در پرخورد قرار میگیرند اما در سالهای دو هزار یک و دو دو از دانشمند های سلومیز و برخلافی پرخورد تمت اونها بسی گفتگوی از اونها رو مطرح میکنیم این که ما اگر با برام دیگه گفتگو بکنیم واقعیت ادیان و تعدد ادیان رو میتونیم با گفتگو از جا جلوگیری بکنیم به خاطر در افغانستان اقوام متفاوتی داریم اگر قرار باشه که پشتون تاجیزو در افغانستان باشه و چه پشتون در افغانستان باشه اینتیوای 2010 و 11 را در افغانستان نقض ما موجب صلح و در افغانستان نمی‌رسیم ما باید بیم که همه اقام در افغانستان وجود داره با اندیشه که این که دیگ ماهی است و جدایی رو را حرمت فرشا تر فر ب شوید میتونیم با هم تنوی فرهگی با زبانیم و شما یک جامعه باارتبار داشته باشیم یک جامعه ترسیافه داشته باشیم و وط در آینده نصنه های بعدی که در افغانستان روی کار میگیرند و قدرت دررس میگیرند باید کشوری محبر و باسبار. دست و پنج نرب بکنم و وجود داشته باشه تشککر جانان دو تور با تاوع بر تعزود اقام که در افغانستان وجود دارد شما کارایی پسثر گرایی را در راستای تمین صلح اجتماعی چیگونه بررسی میتونیم. ما متفانه در افغانستان از خصوصیم در تمام های آخر، حالا نه تنها مفسر مس موارد داخلی بلکه مداخله ای کشورهای منطقه و مداخله قدرت های بیرونی نیز باعث شده که ما ندانیم همین چند تا کرده که را در جامعه درست تعاملینه بکنیم و واقعا اقوام هم دیگه رو به دیدن واقعا زبان های متفاوت هم دیگه رو به دیدن دوباره که ما با همین تنوع پیش برویم و یک کشور با اصالت و وسعت پیدا کنیم ما زمانی می‌توانیم از روی کردی کسی در گوشتر افرانستان استفاده کنیم که دیگه برای ما بعضی افرانستان و افرانستان ها با این اقلیت ها خیلی زیاد مهم نباشه. ما به یک بولیتی ملی به یک باوری ملی همه ای افغانستان افرانستان نظر از اینکه در چی فرم در چیز زبان و در چی مزتر خرار دارن وقتی وی ملیه قرار بگیریم دریای در افغانستان شکل بگیره. و ما روی کردیم لنگرای ما می‌دونیم که چیز شبیه جاهایی که سر در کشور داشته باشیم و به یک صورت حساب هم در کشور داشت پیدا بکنیم خب وقتی کثرت در اینه که ما ممکن است در یک جامعه حالا چه از بودی فرهنگی نگاه بگو بگوینیم از بولی سیاسی نگاه بکنیم یا از فرهنگ فرهنگی وقتی نگاه بکنیم این یک در کشور وجود داره ما زمانی که صدگرایی فرهنگی داریم که ما سایر فرهنگ سایر رسوم وات در جات در کنار این فرهنگوارد تا تزیلی و قبول روکن. اگر ما سایر فرهنگ باورها و رسوم رو طولدن رد بتونیم به قبول نداشته باشیم و من اینه که ما کهگرایی فرهنگی را قبول ندارییم و نه این سزیینه و زمانی که ما باور و فرهنگ و قااهد رسوم می دیگهد و مطح ر قبول نداشته باشیم. شته این بودیم قطا باعثی مذا کشیدگی میشه و ممکنه جامعه را از سل و ثبات دور بکنه و ما با فدرش دیگه دیگه دیگه ها و حاکم در کنار فرهنگ حال مشروط برای اینکه این فرهنگ و ها خورده فرهنگ های موجود در جامعه خلاق عرضش ها و باوری اساسی جامعه و اصولی اساسی بینی که در این جامعه حاکم هست نباشد و فدرش این ها ما میتونیم به کسرتگرایی دست پیدا بکنیم و کسرتگرایی خود برای بسیدن به تو کردیم و در یک کشور در کنار تدویریش تعدد اقوام و همچنان تدویریش پرده فرهنگها در کنار فرهنگ غالب در افغانستان دیگر کدام راهکارهای عملی را مد نظر بگیریم در جامعه مثل افغانستان کتاب از پایدار پایدار دستیابی به ما و شما در افغانستان متاسفانه صدا دولی زیاد متقصد و باورمند به اینم که ما باید از این گفتمانهایی که تا حالا در افغانستان بوده بیرون بگیریم دو گفتمان جنگ گفتمان خشونت گفتمان زهد در افغانستان نتیجه نداده ما از دیر زمان داره دیم بطوریکه مثالیه می‌بینیم که جنگ‌هایی که در افغانستان وجود داشته بوده، هایی در افغانستان جنگیدن، نتوانستند در افغانستان یک بکمه‌ای را حاکی بکنند، در افغانستان یک بکمه‌ای را جاده که واقعا بودنیم و سول درستیم و دستور درستیم. پس به این معنا که دستمزد و جنگ در و با مردم افغانستان و ملکه افغانستان نتیجه نمیده. موضوعی از موضوعی دور نمی‌بینیم با مردم افغانستان در برابر. بنیم اولش ما تاریخ هم داره که روسیه هم با قدرت خود شوروی هم قدرت نشون افغانستان از راهی دیکتاتوری وجود بکنه شوروی هم نداره انگلیس هم نداره که در افغانستان هم اونطوری این که که از راهی دیکتاتوری وجود برقرار افغانستان نمیشه. با این مردم افغانستان باید از راهی آسایت و آموزش بالاخره حکمت نمود و به ثبات سیاسی دست قیدا کرد. یک دوم ما با حکتمان غرگرایی هم در افغانستان افتانستان نشنستیم بستور برسیم به تویسه برسیم،, برسیم. ما از زمان کانفرانسی بون به این طرف در افتانستان مدرانی جدید روی کار آماد. آخرین استعلامی که تو با کالوجیا داشت کشاورز در افغانستان زنجورستر و ها هو فرقی که در افغانستان شکل می‌گیرد، بوریکرد دربی رو معصد دیوی متأسفانه ما با اویکرد او هم ناتونستیم در افغانستان وصول ثواب یلمان پیدا داشته باشیم. بنا اون پیشنهاد رو برای یک ما در افغانستان بتونیم وصول ثواب دست پیدا بکنیم اینه که ما روی کردیم لایه‌بازی در افغانستان ایجاد بکنیم از قبل دوری رو و از گفتمان ها و رویکرد های خوشندانیز و دکتراتوری هم دوری بکنیم با یک پذیرش حمدانی با پذیرش اقوام و مذاهب و بروهای متفاوت در جامعه یک کفایی یک در خوی داخل افغانستان میرسیم و خودی ما کشور بسازیم چرا ما همه باورمان به که افغانستان ساخته نمیشه و در کشور نمیشه دوندگی بکنیم در حالی که ما نزدیک به سه دلار، حتی اقل رو و مواادم در افغانستان که اگر ذخایر تخوین ببینیم مساحتی که افغانستان داره با که افغانستان داره ولی می‌شود به و به‌جودی می‌تونیم در کشور یک روش که تو سلا سبودن دست کنیم ما افغانستان جمعیت افغانستان یک جمعیتی جوانو قابل تمیزی کار است کشور جوان نداره. ما نزدیک به 44 میلیون متر مکعب در افغانستان آب داریم پیش کزم از اینک کشورهای منطقه با این اندازه از آبی خوب درست و هیست ما فقط 18 میلیون متر مکعب آب استفاده می کنیم این ها که در افغانستان وجود داره ما در یک موقعیتی کاملاً جیوتویتیک و موقعیتی جبراطیی در افغانستان قرار بریم که از این موقعیت جغرافیایی خیلی میشه افغانستان استفاده افغ پس نهای می‌ندازیم که در افغانستان ما اگر این جنگ‌های داخلی و از این مداخله دیگری دیگه هست که هر دوره‌ای جلوی دیگه سرآش می‌کنند و دنده‌ای جن تشکیل می‌کنند، دوری دست و هم دیگر باحال باید کرد که با هم دیگر را تفاهم می‌کنیم. تا فدیم خیر و هفت با این مواردی که ما ازش ما در افغانستان داریم با این و که از دهه‌های جغرافیایی ما ازش ما در افغانستان داریم، فدیم به سبب آن‌ها توضیح دادیم. این محاجرت یک عصر هست برای به این وضعیت افغانستان ما شما که کشور در این حالت وجود دارد و خیلی نیاز به افراد و مغزهای متخصص و تحصیل در افغانستان دارد هرکی کشور در این وضعیت که ما شما در یک و دو خیلی دیدیم اصلا با منافع ملی افغانستان نیست و روهای حل نیست که ما با لاخره محاجرت بکنیم و, بکنی و افغانستان بیرون بشیم درست از تناهندگ جهان بانوانی یک اصل پیدا و همه ساله از یک روزی پناهندگی و معاجرت بنوانی یک روزی استقبال می‌کنند و بلاخره بزراشت می‌شود این روز اما این دیگه همیشه به نفع کشورهای خیلی و توسی یافته بود بله و بلدار کشورهایی که بلاخره یا آفته نیستند و در حال توسی هستند یک نیروی عظیمی از تخصوصی و تحصیل کرده ما از کشور خاره می‌شود برای از اینکه بر اینجا دیگه نمیشه ما به ثبات رسید و تویسه رسید و می جریان داره و ما میگینیم زودانه ترادی از جوانهایی که با سوحن نیازی این جوانهای افتانستان و ملک افتانستان که باید در اینجا حضور داشته باشند و به ثبات تویسهی کشورتار بکنند و کشورترک حالا یکی از دلایل همین عدم قسرت و عدم پیزیرش دیگر است. ما حاضر همه را به کنار یا همدیگر بکنیم و خبور بکنیم هم افراد از جانه های در زده و هم میدونیم با کمک همدیگر بودت دادن و همدیگر دیگر این جانه را به بس بسیار برسیم پشکار جناب پکر سیبان چه از قربتهای شما بر راست میشد تایی پیش از چهار دهه اخیر گفتمان غالب در افتانتان گفتمان منازعه و جنگ بود است و در نتیجه این گفتمان متاسفانه ما مهاجرت نیروی متخصیص، نیروی بشری متخصیص به کشورهای اروپایی و غربی داشتیم. آنچه که امروز مهم هست و آنچه که نسل امروز افغانستان مدنگر داشته باشد و در رفعه انطلاحش کنه به نظر شما کارکرد کسیدگرائی برای عبور از گفتمان جنگ و مناظر و همچنان کاهش بحران و حل مسال مدامیز مناظر سیاسی در افغانستان چی کارایی را دارد، چی کار رو دارد؟ ما سندیش یک استبد گرایی. ببین اصلا ما با استبد گرایی می با هم گیر تفاهم بکنیم نیست که اموالات اسلامی در افغانستان قدرت را در راسترا و گروهای دیگه الا چه در داخله یا چه در بیرون از افغانستان اولیاتی در افغانستان نمی پذیرند یا قبول نوتران همین خودی و آدم به اعتقاد و ادم باور با استبد با گرایی اگر ما به استبد گرایی باورمند بشیم خب با مجبور هستیم خودمون فکر با این باورد و تو با این زبان با این طب میتونی در کنار ما مختبر رو بگیرید و با هم به یک سار رو بکنیم این میتونه در افغانستان سباز دویسه رو به بسوار دست حالا قصدهایی که بیرون از افغانستان همیشه دامن میشه ما توی میکنم اونها باعث میشه که ما در داخل کشور نتونیم به یک سباز دویسه دست فیدا بکنیم و یه آرامش داشته باشیم به اگر ما قاید باورها و تفکرلات اسبی عنوان تا و تفکرات غالب در افغانستان بپیریم که می پدیدیم همین و و شمابلوا که در افغانستان می بینین چفاادات دیلیشان هم یک است اما بهان هستند هستن اما ان دارند اما موضوع یک سری که دیگه ای با هم دیگر به تفاهم نرسیم بهوق نمیرسین و ای با میشه که میشه در افغانستان جنگ وجود داشته باشه میشه در کشور ما وجود داشته باشه. بنابراین با رویکردی که شب گریه و بلاریز ما میتونیم در کنار همدیگر قرار بگیریم احول و از این مجینی حالتی که یک گروه گروهی هستند میکنه در حالی که واقعا می همه اقوا و همه مذاهب ام و امن زبان ها واقعیت جامعه افغانستان هستند و نباید اینا این را کنار بجنمید باید در پیدا کنیم که در کنار همدیگر در افغانستان به یک جامعه باثبات و تو با دست پیدا کنیم از دینا شما در جوریان هستیم و از قضای افغانستان ترک داریم یکی از اوامل منازات اجتماعی در افغانستان برطری طریقه های قومی هست یعنی بود فرهنگ غالب قومی یا فرهنگ سیاسی قومی در افغانستان که به همچنان برطریقه و موضوع اکثریت و اقلیت یکی از اوامل اساسی منازات اجتماعی در افغانستان تا این روز بوده است. برای مبارزه با برتری طلبی قومی از کس سرگرای چگون است حالت او ببینید ما در دین هم اونجا جایگاه اصولی نداره که ما یک فرد یا یک گروه با می دیگه برتر بدانیم و بگیم که مثلا ما صلاح بلند با قومی دیگه, دیگه, دیگه, دیگه داره و اینطور غالب است، این مخلوم اقلیت است و امثال این حرفا به که از بود دینی هم برطر کسی است که از تقوی پشتر برخوردار باشد و متقی باشد روی همین حساس با این مبناء ما با تفکر کسردگیلی گفتمان را ایجاد بکنیم گفتمان را ایجاد بکنیم که هم پشتی تحصیل کرده و دانشگاهی افغانستان و هم پشتی که بی‌روناد ژاپنستان چنین نمود نگاه کلی و ذاتی بلگرا به آنسام قبول ندارم در مورد پذیرش آن‌ها نیست ما یک گفتمانی غالب و ملی برتر این درسته که ژاپنستان شکل می‌گیرد تشکیل بشه که هم سایر اقوام خود در این گفتمانش بپرند و هم در کنار کانون یک قرار بگیرند بعدا قرار بشه ما بر بحث اولویت و زبان بیشتر از رعایت ثانوی دامن بزنیم و کشور کشور به جایزا و صاحباتی که باید در آینده دفت پیدا بکنه و برسه دفت پیدا نمی کنه و نمی رسه و در به خاطر جویی از برطریق و این یا برطریق زبانی و امسال هم, هم که سرتگرایی همین به های تجزیه شدید و های متفاوت می یک رایی باشه و یک گویی کرده باشه که ما و شما را امت بکنه و بکنه برسن برسن برسن. و بکنیم در افتانشان برسه برسیم و درمان همزی شهر کسرتگرهی جا فیدا می کند که ما واقع به واقعیت امر باورمند به فضیرش دیستوهای دیگران و فضیرش اقوار متفاوت در کشورد باشیم که من امیدوار هستم که این روی کرد در افغانستان اتفاق بیافته و ما همه در کنار هم دیگر جندگی بکنیم که خوشبختانه پرلم رضیت در افغانستان از بولی امیتی و همسان رو هم خوب است انشاءالله که توسعه پیدا بکنه و ما روزی تشکر جناب دکور با ترجو به تعدد قومی که در افغانستان وجود دارد تعدد فرهنگی این کار نافذیر هست به یک از واقعات های جامعه افغانستان به نظر می رسد. به نظر شما از کسرتگرای فرهنگی چگونه میکنیم در راستای سازگاری میان فرهنگ های مختلف استفاده نماییم و احترام به فرهنگ های متفاوته در جامعه افغانستان نهاده نسازیم خب متشکرم از یاران خدمت شما که که استراتژی فرهنگی شاید ما تایید کنند ولی فراهم تایید کننده راه عادت یا باوری فرهنگی طرف دیگه نباشیم اما اینکه ما خلاص یه دور از خود باو عمل نکرین همین پوری مفهومای که استراتژی فرهنگی اصلا شما هر جوامع هر کشاره که در نظر بگیریم فرهنگ غامی یه بیشتر احتماله داره وجود داشته و در کنار این فرهنگ غامی نمود کرده ممکن است که فرهنگ‌ها سری خورد و رس و آدات فرکر بکیه هم در جانه وجود داشته باشه او حالتی وجود دارد که انسان‌ها ها با سنتی که در او بدور شدند با فرهنگی که در او بدور شدند، با رس و آدابی که در او بدور خیلی سخت است که یک بایگه او نارد تا تغییر بده یا او باورها و حاکم در همون تقریه و سنت و جانه خورد تر بکنند بدا هم ما زمانی از این تزاق فرهنگی و نزاق فرهنگی در داخل جهان تو انجلو گیری بکنیم و اولی اتفاقون برسیم که ما فرهنگ متفاوت رسم و روستون و عادات متفاوت رو در داخل جهان بفت داریم با گلد بکنیم و با همون تفاوت و دیگه و تنوه رو در کنار همدیگر قرار بگیریم درست است ما به با این باور هستیم رسمی مای فرهنگ رو برسم و داریم و رسون دیگه داریم و هم کشوری ما در جاوی مزندگی می کنند و باید باور مصومی دیگه ای امود خود فیشن برند، ما باید با همی روی کرد و فکردیم و اگر این روی کردی تجریش چه در فرهنگ بالی و چه در خود که در مجموعی فرهنگ بالی پرار دارن، شکل بگیره و افعیده بسند می توانیم ما شما از این فضا دیفت دیو فرهنگ در داخل جاوانا جدوگیری بسند دکتر رحیمی به عنوان جنبندی بحث امروز با در نظر درست تعدد اقوام و تعدد فرهنگی در جامعه افغانستان چگونه برای گذار از مناظر و حل چالش های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در افغانستان از کسرتگرائی برای رسیدن به همزیستی مسالمت آمیز، بحره مفید به معصر نومه به عنوان جنبندی و نقطه پایانی بحثی اینجورا در یک چی ساید ما در افغانستان پیش دارم و عرض کردیم که متاسفانه ای چا دشتار مشکلات بگذار دارد برای دیدی که ما از این زیاد قبول بکنیم و این اختلافاتی که ممکن است لگ جانه رو جد داشته باشه محل احل رو شده اولی این که باید تک تکی اتباع افغانستان وانمود شد رسانده شد یا خودشان تک تک درد بکنن افغانستان می‌تونه در آینده یک کشوری مترکی، یک کشوری سرادمان یک موقعیت خوبی استراتیجیک هست به اوما و یک مناسبی خوبی دسترسیب داریم و در اینجا وجود داره بنام این فکری که در تمام اصبای افغانستان خب شده که در افغانستان جایی زندگی نیست ما در اینجا نمی‌تونیم آسایش داشته بشید، ما در اینجا نمی‌تونیم فرزندان ما ترست آموزش ببینن و تدلیت و می‌بوده ترین که ما می‌توانیم می‌جوینیم، حالا خودی ما، خودی آسیا، فارسان و مردم دیگر فارسانی را گسترد. اما این تفاوت باید شکل بگیره، جای بگیره تا اینکه ما بتوانیم متخصصین تا ها و, و جوانایی که ممکن در آن دیکشنری شرکت کرده‌ام، این آن لحظه‌مانش را مدریجه بودیم و دو من. دوم دو ملیگرایی داره فارسان شکل بگیره. موتا اینکه دو ملیگرایی دست پیدا می‌کنیم و اساسی تعلق مثبت به هر یک از افغانستان نسبت به این کشور به وجود نیاید و خود متعلق واقعا به این خاک و این سرزمین ندارند برای رشد و توسعه کشور کار نمی کنم پس هر زمانی که کردی ملیگرایی در اتبای افغانستان شکل بگیره تو همه خود متعلق با افغانستان بدارم دیگه از این که من پشتون هستم، من تلوژیک هستم یا ارزال هستم تو آزده استم تا قدوری دوری می درست است. ما به عنوان یک واقعیت می که افوان متفاوت وجود دارد. اما از دانیت کرده بر ما منافعی ملی متوجه دارد. دانیت کرده بر ما ملیگرایی که بکنیم بردار افغانستان و با تلوژه فرسانی وجود داره. ما پیش از این که پشنه باشیم توجه باشیم آذریان صراحه معامله مسلمان هستیم ما هم و افغانستانی و افغان هستیم هم زمانی که این ویژگی را متامث در افغانستان پیاده بکنیم و شکل بگیره ما قطعاً از این تعارض ها عبور می کنیم و موفق بشیم به کسادگی می تونیم به در افغانستان برسیم اما شرط این است که هم دولت واکن و حکومت خاصم در افغانستان دست به این و هم ملت که در بنابرای دولت قرار دارم به این باور و اندیشه برستم در صورتی که دولت هم باز نخواسته باشه و حکومت که آسان در افتانستان این تگیریش این تفکر و تفاوات دیدگاه ها و فرهنگ های تفاوات در جانب نخواسته باشه یا خود به این حتیان دیگه مزمون نخواهند ما قطعاً استفاد تویسته هم نمیرسیم بنابرای کس رزگیری به معنایی اون دیگاه غیرگی که است. کسرت گره این مطرح شد که بالاخره شما حتی بخشی که گره این دینی کنه مطرح نیکنند که هر دین میتونه در واقعیت خود درست باشه ما باور نیستیم. ما در کشور استونی و در جامعه استونی و این دیوشی سیونی باورمند بگذتیم که صحای از یاد نمیتیم شده او اگر آن دینی که از مورد یه طبول است و اگر دینی که ما رو مثل رسوانه دینی اسلام است و ما ادیانی دیگه رو به عنوان یک واقعیت می پیدریم و برای از این که بکنیم به و دیگران هم تشویر بکنیم و دین اسلام بود می گفتمان به عنوانی بهترین راه پشناد می که ما در سطح کلی در دیگه ادیان گفتگو کنیم و اونا رو تشویر می کنیم تا و دین اسلام بود می باشه و با این دین که می توان مطلبی که سرگیری دینی در داخلی که داخل می دینیم فهم باز در خودی مذهب هم باز, باز وجود داره که هم باز هم, هم دیگره قبول اگر ما با پذیرش با به برسیم و قبول داشته باشیم و رسیدن با واقعیت زنی دغدغه خوب با هم دیگر دوست دوست بودنی وظایف دوست دوست پیش برویم در جامعه میتونه سال وجود داره و استفاده داشته باشه گرچه که در ما شما از راهی دوست دوست یکوند روی که در کشوری پیش ناز میشه میتونیم با صلح استفاده داشته باشیم شاید که بلوها یکی بوده افغانستان وجود ندارن یا اطلاعی که افغانستان رو پر کردن منابع تاولیکی در افغانستان هم ده این شان الله که آباد با نظام فعلی گفت و گو بکنم سوال بکنم و فجی ریشه کسی هستند که روی هر دوباره بار ما انسان که فارسانه ترک کردن دوباره در کشور داشته باشیم ولی جامان تا آمده ام لا ترک فارسان دست داده نیامده این کشور ما و شما دستور سفارش دادند. متشکرم از آقای دکتر اتیپولا رحیمی، استاد دانشگاه و مولینی جلیع دانشجوی جامی از حضور شما در برنامه کستفگرایی و افغانستان یک جان سپاس که از را در مدیران ما و همچنان شنوندگان و بینندگان این برنامه بودید. همچنان همراهانی میرامی در صفحات اجتماعی وبسایت و همچنان شبکه‌های های مثل مطالعات استوری و افغانستان، سازمان اجتماعی صفحه و رادیو آنلاین را از همراهی همه شما سپاسگزارم. تا دیدار دیگر شما را به خداوند می托م.